الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح هيشف آخر رسول صلى الله عليه وسلم إن دعاه ر تارك نميكاد نب سبجاه نشامجاه هيشف آخر رسول إن دعاه ر تارك نميكاد لأنها مش اللهم العفو والعافية ودر روايتي اللهم يسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم يسألك العافية عافيات معافات يعني شيء پاكي از هر عيب و نقصي مارو پاك بس از هر قناهي پر از هر دردي از هر مرزي در دنیا و آخرت در آخرت قبر أولين جایگاه يقول تو نيازه باعافية داري عذاب قبر نبيني اللهم يسألك العافية في الدنيا والآخرة عافیت تو هم در دنیا لازم داری صحیح و سالم باشی و هم در قبرت که الله عذابت نده از الله عافیت بطلب سلامتی و سالمی بطلب طلب کن از الله الله اللهم نسالك العافيه في الدنيا والاخره ما کنید عافیت تلبی و طلب عافیت از الله یعنی بیمه خاصن از خدا اینو بیمه سازیه پروردگارم مرا بیمه کن پروردگارم مرا بیمه خودت کن به تنها نه کسی دیگرا بیمه خودت به تنهایی هیچ دردی بهم نرسه هیچ مصیبتی بهم نرسه بیمه خودت در دنیا و بیمه خودت در آخرت در قبرم در صحنه محشر و بر پل بیمه خودت متوسل شدن به ذات پاک یتای الله فقط خودش علیس الله بکاف العبد خدا کافی نیست کافی نیست الله اگر کافی پس رو دانی دیگه رو بزنیم چرا رو می‌کنی کسی دیگه الله کافی برای بنده مؤمنش اما من على الله فهو حسبه الله کافی هر کس بهش اعتماد بکنه الله براش کفایته. از آیاتی که مثلا این روزها آدم میشنه بر سر زبان‌ها اونایی که خصوصا ترس و هلع توش اومده در مقابل بیماری مثلا این آیه آیه رو زیاد دیدم که بر سر زبان‌ها قل لا یصیبنا الا ما الله یعنی ترس و وحشت برش داشته مصیبتی بهمون نمیرسه مگر درسته اینو داره از باب عبودیت میگه یعنی این مصیبت اگر خدا بخواد من دو چارش نمیشم. ولی که مشکل من کجاست ترس از مخلوق و فراموشکار یعنی این قد آدم از مریضی میترسه از خدا نمیترسه این قد که, که وسواسیت و حساسیت روی بهداشت خودش داره روی عبادت خودش نداره روی طاعتش و روی ذکرش نداره پایبند نیست این نقص در مقام عبودیت در مقام پرستش اینو باید ما اصلاح بکنیم اگر بیمه الهی میخوام بشیم باید ترسمون فقط از الله یک بشه فقط الله رو باید در نظر داشته باشیم اللهم انا نسالک العفو والعافيه پروردگار تو عفو و عافیت حف یعنی بخشش ببخش پروردگار از تخسیراتم گناهانم و از تو عافیت می طلبم در دینم و دنیام در دین این که در دینم دوچار لغزش نشم گمراه نشم در دینم دوچار شرک و بدعت نشم این گمراهی در دینه گمراهی در دینه به دینت آسیب میرسونه معصیت به دینت آسیب میرسونه ایمان تو ضعیف میکنه پروردگار عفو و بهم بده در دینم و در دنیام یعنی رو در دنیا پروردگار را حفظ کن بیمه خودت قرار بده در دینم بیمه خودت قرار بده در دنیا مال حرامی تو دل نره رزق پاکی بهم به بده دعاس و اهلی و مالی و در خانوادهم یعنی بیمه کن خانوادهم و مالم ما کنید یعنی سبحان الله یعنی تمام امور زندگی دور تو داری به خدا میسپاری از ابتدایی که سوکچشت باز کردی داری از الله کمک میخوای شبم که شب هنگامی میخوای بخوابی الان شب میخوای بری سرایت کنی بازم بیاد اللهی ازش کمر میخوای این رجوعه و این بازگشت به سوی الله این پناه بردن و کسی که در خدا را بزنه الله درش شنید می‌منده به سویش اللهم استر عوراتی و در واتی اللهم استر عوراتی و آمن روعاتی و در واتی آمن روعاتی ولی خو مشرت اللهم استر عوراتی و آمن روعاتی اللهم استر عوراتی عورت انسان عورت شرمگاه انسان گفته میشه ولی خب مقصد و مراد فقط شرمگاه نیست هر چیزی که الله سکرت کرده تو خانوادت زن و بچهت اینا همه شد پاوردگارا اون چیزی که مستوره اون چیزی که باید پنهان بشه پنهان نگهش دار از الله میتلمی از الله میتلمی پاوردگاه این دخترم به خودت می که این دخترم بی حجاب نشه بعد حجاب نشه این اهمیت عورت رو میرسونه و اهمیت بود عقوبتی که الله اولین عقوبتی که به آدم و حوا داد الله در بهشتش بعد از اینکه از اون میوه خوردن چی بود کشف عورت درسته؟ زش بود شرمنده شدن اونجا بود که پی بردن به گناهشون اونجا عقوبت بود اونجا احساس شرمندگی کردن چون الله رو قبول داشتن ایمان به الله داشتن هم آدم هم هوا بغا ترحمين امه دار رو به خدا وردن اقرار کردن به گناهش و ربنا غنا انفسنا و اقرار کردم به گناهش ولیکن الان چون ایمان نیست و ایمان که نباشم حیا نیست و حیا شعبه من شعب ایمان حیا هم یک شعبه از ایمانه ان لم تصحف اسمع ما اگر حیا نداره شعبه هر کاری میکنی. حیا از ایمانه حیا است حیا رفت ایمان چون رفته حیا هم نیست حیا نیست عراتش خودش کش میکنه دستش از این طرف دختره بیرونه موهاش از اون طرف بیرونه پاهاش از اون طرف اصلا براش مهم نیست ستر براش مهم نیست الله ستر میخواد بنده ستر نمیخواد در گریز و فرار از دین خدا التزام به دین خدا پای بندی به دین خدا این نقصه این جمهوریه چطور بیمه خدا شامل حالش بشه و این در گریز و فرار از شرع خدا بعد میاد میگه که من ترس شدم جادو شدم چش خوردم نقص در عبودیت داشتی خواهرم، دخترم تو مشکل داری در حجابت در عبودیتت نسبت به خدا بندگی نسبت به خدا آسیبی رسید مقصر خودتی با رنگ های مختلف خودت آرایش میکنی که بگن او چقدر خوشگل شده زیبا شده بعد که چشم میخوری میگه چش خوردم خود را به نمایش دیگران گذاشتی، بعد میای آجزنالی هم میکنی که این چنین و این چنان شد مقص کسی را جز خودت ملامت نکن جا هست اهمیت این ذکر و شناخت و فهم معناش اگر از الله میتلبی صحابی اومد شطور دستش بود تناب رها کرد گفت اگر خدا بخواد حفظش میکنه چی بهش فرمود؟ قال اعقلها، ثم توکل ببندش بعد توکل کن تو حجابت ببوش بعد توکل کن با بی حجابی ذکر رو میخونی خود را به خدا میسبونی بیمه می خدا میخوای بشی نمیشه اعقل ها ببند خود رو محکم بگیر به تناوری سمان الهی و آمر روعاتی هر چیزی که تو را در روع و وحشت و ترس بندازه پناه ببر بخود ازش اون روع و وحشت پر را پناه ببر از اون روع و وحشت هر روع و وحشتی که هست الان از شخص فرد از ارتش لشکر سرباز از هر چیزی بیماری هر چیزی که ترس و وحشت در دل میگذاره ترس و وحشت را يا رب ما نگزار اگر ترس و وحشت می‌بینی در مقابل دردی مصیبتی بدان که ضعف در ایمان نمیگم میگم این ایمان نیستا ضعف در ایمانه اللهم احفظ من بين يدي من خلفي جلوا بين يدي خلفي پشت سرم و عن يمين و عن شمالي و من فوقي و من و اعوذ بعظمتك ان اقتال من تحتي پبر دگارا پناه میبرم بهت از جلو و عقب از دست چپ و راستم از بالا و پایین اینکه من یا خسف بشم در زمین فرو برده بشم یا اینکه از ایزه این محروم بشم به جای دیگه مثل سرزمین کف مثلا مبتلا بشه انسان یا ترور بشه یا اینکه در جای او رو بندازن مثل زندانی او را بندازن حالا شاید بعضی ها گفتن که شامل این دعا میشن یعنی این یه نو پناه بردن به خداوند از این انواع هایی که شیطان برای انسان گذاشته چون شیطان از خدا خواسته در قرآن خدا ازش نقل میکنه که به خدای چنین گفتم ملائکه منهم من بین هم و من خلفهم و عن هم و عن شمائلهم و لا تجد اكثرهم شاکرین نمیذارم که چشو گذرا و سپاس گذار باشه از جلو و اقبال بالا پایین چپ راست از همه از هر وسیله ای بتونم اونها رو گمراه میکنم با هر وسیله ای بتونم اونها رو گمراه میسازم بنابراین به خدا بر از هر طرفی که ابلیس و شیاطین بخوان ما رو وسوسه بکنن و در جمهوری ما رو بندازن پس این دعا رو حفظ بکنیم حتما دعایی که رسول اصلا همیشه می‌گفتن دای هشتم مراعات ترتیبش اجتهادی یعنی نیمده در حدیثی که رسول به این ترتیب می‌خوندن عقب جلو بردن این دعاها مشکلی نیست یعنی فقط اجتهادی من اینجا بین بی ترتیب بردن اللهم عافيني في بدني اللهم عافيني في سمعي اللهم عافيني في بصري لا اله الا اللهم اني عاودبك من الكفر و اللهم اني من عذاب القبر لا إله الا انت خب عبالي قسمت اول معافات و عافیت در بدن در دنبال يه اومده که صحابی صحابي ميگه که كه رسول الله اين دعا را خونده فا احبا استنه به صنعت و دوست دارم كه اين سنت رسول الله را انجام بدم چيزي از صحابه از رسول ميشنيدن دیگه ترکش نميكنن چون شنيده رسول الله ميگه منم ميگم ترکش نميكنم صحابي ميگه این دعا قسمت اولش که ما شرح دادیم عافیت خاصانه و یا همون بیمه که ما به کار بردیم در بدن از الله قسمت دوم در شنیدن و همچنین در دیدن یعنی پروردگارا عافیت در شنوایی و بینایی ما قرار بده عافیت قرار بده عافیت معنوی و عافیت حسی نکور بشیم و کار بشیم و نه این که استعمال بکنیم استفاده بکنیم از این نعمت در گناه و معصیت با این نعمت از ناشکری و ناسپاسی در غیر راه مشروعش استفاده بکنیم موسیقی بشنیم با گوشیم این عدم عافیت در شنوایی این حرمانه اللهم این نعوده که من الکفر و فقر پر بردگار پناه به میبرم از کفر و فقر پر بردگار پناه به میبرم از عذاب قبر اسمات عذاب قبر دنیایی هست قبری هست بدون تو مسئولی در مقابل گوشت و چشمت. مسئولی در مقابل بدنت در بدن گفت در شنوایی و در دیدن گناهان انسان از همین جوی دیگه که نیست بدن ترعام و بعد از میاد گوش شنیدن غیبت خصوصا و این زبان و چش از الله آفیت بتلمیم استقامت بتلمیم نهومین ذکر حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم این ذکر ابو دردا میگفتن از رسولت اصلا صحابت نیست ولی خب این ذکر, ذکری نیست که اجتهاد بکنه صحابی مثلا از جیب خودش در بیاره مثلا بگه حسان وقتی که پاداشش هم میگه ابو دردا چنین ذکر رو میگفت تابعه ازشون نقل میکنه میگه چنین, چنین چیزی رو میگه من قال اذا اصبح اذا و اذا امسای چنین هاگری رو از ابو دردا میشنبه حسبی الله یعنی الله کفایتم میکنه لا اله الا هو علیه توکل توکل میکنم غیر از اون معبود به حقی نیست و هو رب العرش العظيم و او پروردگار آفریدگار رب رب اون عرش بزرگی هست که آفریده کسی هفت وار بگه سبع مرات کفاه ما اهمه اون چیزی که او را در هم و اندوه و غم و اندوه انداخته الله او را کفایت میکنه یعنی اون همش اون غمش رو الله برطرف میکنه کسی این ذکر را بگه ولی گفتم درسته که از اساس نیست صحابی داره میگه ولی حکم مرفو داره امکانش نیست که این صحابی از خودش بگه یعنی حتما شنیده از رسول الله صلی الله علیه و که داره اینجا این چیزین به یارانش یاد میده به تابعین داره یاد میده دهمین ده ذکر اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك من استطعت بین چی میگن؟ سید الاستغفار چرا سید الاستغفار بالاترین استغفاره بالاترین مقام توبه و رجوع به الله است بالاترین مقام توبه ها رو داره حتما پس معنای بزرگی هم توشه هست که اسمش سیده. سید استغفارها هست. سردسته آقای کل استغفارها هست. اللهم انت ربی لا اله هلن. تو پروردگار منی معبود به حقی هم جزتونیست. اینا دیگه نیاز به شرح نداره. خلقتنی ون عبدوک اگر زن هم میگه خلقتنی ون عمدوک. ما میگیم ما بنده تویم اون میگم من کنیز تو هم. یعنی بحث زن و مرد میکنه. خلقتني وانا عبدك من بنديتو ان فاردقاره وانا على عهدك ووعدك ما استطعت وانا على عهدك ووعدك عهد متعهد من تعهد خلا من نسبة بتوفر بردقاره هستم فقال بعديك دادي ما استطعت در حد تتوانم در حد تتوانم السقامات مبارزان بار دينات وان عهدك دادي عهد شهادتين دادي عهد من أشان لا إله إلا الله الله ربي یکتایی و یکتاپرستی وقتی قبول کردیم بعد دیگه فرمانبردارش بشیم بعد ازش حرف شنوی داشته باشیم این عهد بر خودمون بسی در حدیث داریم در صحیح مسلم حدیث علا علی بن عبدالرحمن اس بدلش از که در حدیث میگه اذا قال العبد اياك نعبد و اياك ایا اياك نعبد و اياك نستعين فقط تو را می‌پرستیم و فقط از تو استعانت می‌جوییم میگه هذا بيني وبين عبدي یعنی این عهد بین من و بندی من، یا کن عبود و یا کن استعیم، این ترا بتنهایی بپرسم و استو بتنهایی صعاند بجویم. هذا بینی و بین عبدي عهد بین منو بندم. این عهد، عهد دادیم به خدا وقتی که سر نماز میگی یا کن و یا کن عهد میدم به تو پروردگارا فقط را بفراسم و فقط از تو کمک بجویم. یا کن عبود و یا کن و ایذا قال اهدن صراط المستقيم سررات مستقیم از خدا خواستیم و بددی مسائل اونجا داشتیم حالاحت بینی و بین عبدي و ابدی مسائل اي یعنی منظور و ابدی مسل یعنی عده منم به بندم اون چیزی که از من خواسته در صورتی که فقط از من بخواه فقط از من به بهج کمک بخواه و ابدی مسائل بندم از من منخوا سرات مستقیم هدایتش بکنم اینم عدده من بهش میدم و لعبدی ما اون چیزی که از من خواسته صراط مستقیم بهش میدم یعنی او را براحتی و بهش میرسونام از پول صراط ردش میدم این وعده هست وعده یکی؟ وعده یا الله جل شانه در صورتی ولی که چی؟ و من پایدار باشیم متعهد باشیم و انا على عهدی که وعدی که من سطعت اعوذو بکن من شر ما صنعت در مقابل هر شری بدی که انجام دادن بیت پناه میبرم أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي. أبو لك يعني اعترف اقرب اقرار ميكونام اعترف ميكونام برحر نعمتك بمن دادي و арزاني دوشتي در مقابل نعمتك بمان دادي اقرار دارا وأبو لك بذنبي در مقابل براهم اقرار دارا 20 vãoهانك أعمدد فأغفر لي بنا ببخش. رو ببخش وناها نعمدد اقرار دارا برا دقارا 20 calls فانه لَا يَغْفَرُ الذنوب إِلَّا انت هیچ کسی جستو نیست که گناهان را ببخشه و بیامرزه هیچ کسی جستو نیست که گناهان را ببخشه و بیامرزه ابوه به نعمت که علیه و ابوه به ذنبی ابوه به نعمت که جایگاه حمد و سپاسه الحمد الحمدلله و تسبیح و تکبیر جایگاه اونه وقتی که اونها درست گفته شد اینجا این مقام اون تأثیر داره. ابو که علی. نعمت خدا به چشت میاد دیدید مردم نعمت به چشتشو نمیاد دیدید مردمی که آجازنا نمی کنم نداریم گرونیه این ایران فلاکت زده شده این نمیدونم حالا چند تا فوشم دشمنم به آخوندم میده ده آخوندا این کارو کردن فلان کردن این نالش ها را شنیدید دیگه درسته؟ هر روز می شنید. هر روز همه جا پره نالش فقط می نالیم انگار خلقت شدین برای نالش هیچ نعمتی به چشمون نمیاد انگار هیچ خوبی نیست تو زندگیمون انگار خوشی نیست انگار خوشی نمیبینین سبحان الله نوشکری ناسپاسی. دیگه دیگه که بیشتر درد دیگه بدتر از اون کسی که نداره اون کسی که نداره یک الحمدلله سر زبونش میاد اون که داره بدتر بیناله صبتم خاتمه میدم با این حدیث خیلی حدیث جالبیه حدیث دو کلمه‌ای قبلا دوستای که با ما بودن اگه یادشون هست یاک و حلوب یاتون از دوستا کسانی که بودن با ما یاک و حلوب یاتون هست شبی شاپهنگامی شب رسوا بیرون میره نباک رحمت تو کوچه رسول الله رو میبینن بعد میگه ما اخراج و چی چی ما بیرون آورده میگن جوع گرسنگی یا رسول الله بعد مینا پیش یک انصاری انصاری تو خونه نبوده خانمش بوده میگه صبر کنید تا شوهرم بیاد شوهرش میاد میاد که بوز مادیه را سر ببره براشون تقدیم بکنه قربود از یاک و حلوب اون که ماده هست نکوش چون از شیر میدوشید و شیرش استفاده میکنید شیر اون رو گوسفند میذوشه بعد یک بوز نری را زب میکنه بعد تقدیم رسول الله صلی الله علیه و آله و بکر و عمر میکنه بعد رسول الله صلی الله علیه و خطاب بکر و عمر میکنه میگه والله لا تسالون عن هذا النعیمه يوم القيامه و كما قال علیه الصلاه و السلام قسم با الله که شما در مقابل این نعمت در روز قیامت سوال میشید اساس چی میخواد از خدا یه تنه درستی الحمدلله داریم رزخ و روزی لقمه ای که به دهنمون برسه و گروس ننشیم و الحمدلله الله به داده دیگه چی میخوام از خداون زیاد تلبی و این تمع و حرص دنیا صحب شده که ما ناشکر و ناسپاس بشیم این جای تنی و جای تفکر داره این خلاف شکر و سپاس الهی هست آدم با شک ما بله خودمون وقتی نگاه میکنیم عربا دارن امارات داره فلان کویت دارن فلان دارن اونا نمیذنه بهترین ماشین بهترین موبایل دارن قیاس میگیریم در کفرام میگی چرا قیاس بگیریم خودم خداوند روزی ها رو تقسیم کرده به بیشتر و به این داده تو داری حسادت میورزی این حسادته حرص تو سبب حسادت شده خدا داده بهشون تو نمیتونی الله روزی سوال ببری انتقاد بکنی چرا خدا داده خداست لا یسأل عما يفعل فعل خداست تو نمیتونی الله رازی لساله بره چرا داده؟ نم تو را تقصیر ما را خدا خاصی ایرانی باشیم فرآیندی رو خاص شعبنی باشه فرآیندی هم تو شجوار باش که الله و تو دین و ایمان داده وطنی سالم و لقمه اینانی حلالی که قرص نشی سبحانکرما بحمداللله و صلی الله و محمد و سلم